بسه خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین ما نامه پولس رسول به فیلیپیان رو مطالعه کردیم معلم ما به ما گفت که سه باب اول این کتاب فلسفه‌ای برای زندگی مسیحی، الگویی برای زندگی مسیحی و ارزشی برای زندگی مسیحیه امروز ما به باب چهارم می‌رسیم که در مورد نسخه‌ای برای زندگی مسیحیه و تنها بر کلمی آرامش تمرکز داره. تمام ملت ها بر آرامش تأکید می کنند و هر کسی به دنبال آرامشه. آرامش درونی. بیاید به معلممون ملحق بشیم و به درس امروز گوش بدیم تا بفهمیم که نسخه پولس برای آرامش چیه. ضمن بررسی خودمون از کتاب مقدس به عهد جدید و نامه های پولس رسول رسیدیم. اگه کتاب مقدس همراهتون هست، لطفاً به نامه پولس رسول به فیلیپیان نگاه کنید تا یک بار دیگه نامه فوقالعاده پولس به کلیسای مورد علاقش رو بررسی کنیم. ما ضمن بررسی خودمون از این کتاب به باب چهار روم رسیدیم. قبلا دیدیم که نامه پولس به فیلیپیان نامه تعلیمی و دستورالعمل نیست بلکه نامه تشکر الهام گرفته است که با توصیفی زیبا زندگی در مسیح رو به ما معرفی میکنه. در باب اول ما اشتیاق و فلسفه زندگی در مسیح رو می بینیم که پولوس رسول خودش رو مثال زده و در باب دوم پولوس به روش کاربردی چند نفر رو مثال میزنه که در مسیح زندگی می کنن. ما مثال از زندگی مسیح، پولس، تیموتاوس و بلاخره اپافرودیتوس رو دیدیم. مرد پیری که هدایای کلیسای فیلیپیان رو برای پولوس به زندان روم می برده. من باب سوم رو به طور خلاصه اینطور جنبندی کردم که پولس در مورد جایزه زندگی در مسیح برای ما می نویسه که دعوت خدا برای زندگی در مسیح است یا چیزی که خداوند ما مسیح از ما می که انجام بدیم پولس با یک پروسه الهام گرفته به ما نشون میده که چطور میتونیم به این جایزه دست پیدا کنیم وقتی که باب چهارم رو جنبندی می کنیم می فهمیم که مطالب پولس اینجا کار تر هست من به باب چهارم عنوان ای برای زندگی در مسیح رو دادم. نسخه پولس برای زندگی در مسیح بر حول کلمه سلامتی و آرامش میچرخه آیا تا به حال ملاحظه کردید که سلامتی در نامه های و دیگر رسولان چه اهمیتی داره؟ تا حالا ملاحظه کردید که پیروان مسیح درودهای خودشون رو اینطور به هم نثار میکنن؟ فیض و آرامش و برکت بر شما باشه اینطور به نظر میاد که اونها دوست دارند برای هم برکت بتلبن. من این طلب برکت زیبا به زبان اسکاتلندی رو جایی خوندم که در مورد آرامش هست و هم میخوام برای شما بخونم آرامش عمیق امواج دریا را بر شما اعلام میکنم آرامش عمیق هوای مطبوع را بر شما اعلام میکنم آرامش عمیق خلوت زمین را بر شما اعلام میکنم آرامش عمیق ستارگان درخشان را بر شما اعلام میکنم آرامش عمیق یک شب لطیف را بر شما اعلام میکنم نور آرامش بخش ماه و ستارهگان را بر شما اعلام می کنم آرامش عمیق مسیح نور جهان را بر شما اعلام می کنم آرامش عمیق مسیح را بر شما اعلام می کنم ایمانداران اسکاتلندی زبان به این صورت به همدیگر درود می فرستادند سابقه این گونه درود فرستادن به ایمانداران کلیساهای عهد جدید برمیگرده. در این چهار باب نامه پولس به, به فلیپیان پولس به یک سری مسائل کاربردی اشاره می করে که ما در طول زندگیمون در مسیح با اونها برخورد میکنیم. تمام اینها حول محور آرامش قرار گرفته. میخوام بخشی از باب چهارم روم رو براتون بخونم که این موضوع رو خیلی شفاف بیان کرده. او میگه پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است. نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. حالا قسمت آخر توصیه. در خاتمه ای برادران درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیک نام و هرچه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید. تمام چیزهایی را که از من آموختید و, و به دست آوردید یعنی آنچه را از من شنیدید سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش شست با شما خواهد بود حالا که پس از مدتی دوباره مورد توجه شما قرار ام شادی عظیمی در خداون یافتم البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجه داشتید اما فرصت ابراز آن را نیافتید من به احتیاجات شخصی خودم اشاره نمی کنم زیرا یاد گرفتم در هر وضعی که باشم قناعت کنم من میدانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم به رمز زیستن در سیدی و گرسنگی در فراوانی و نیازمندی پی بردم من به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند به انجام هر کاری قادر هستم در این قسمت کاربردی پولس همینطور در مورد زندگی در مسیح با ما صحبت می میکنه او به ما نسخه برای زندگی در مسیح میده او در این تعلیم زندگی در مسیح بر مفهوم آرامش تمرکز کرده و به ما میگه که چطور آرامش خدا رو داشته باشیم آرامش خدا مشروط هست در عهد عتیق در اشعیا باب 26 آیه نوشته ای خداوند صلح و آرامش کامل به آنهایی که در اندیشه های خود راسخند و به تو توکل دارند عطا فرما حالا اگه شما دقت کنید میبینید که اشعیا شرط داشتن آرامش خدا رو اینطور طور میگه اشعیا گفته که شما میتونید آرامش خدا رو داشته باشید اگه به دو شرط عمل کنید. ای خداوند، صلح و آرامش کامل رو به آنهایی که در اندیشه های خود راسخند و به تو توکل دارند، اتا فرمان. اگه شما اندیشتون محکم باشه و به خداوند توکل داشته باشید، اون موقع خدا شما رو در آرامش کامل خودش نگه می‌داره. اما شما باید به این شرط ها عمل کنید تا خدا شما رو در آرامش کامل خودش سحیم کنه. وقتی که ما در مورد آرامش در زمینه یک کتاب مقدس صحبت می‌کنیم، باید چیزهایی رو تشخیص بدیم. قبل از هر چیز کتاب مقدس در مورد آرامش دنیا صحبت می‌کنه. ما در مورد آرامش دنیا خیلی فکر می‌کنیم. اگه شما یادتون باشه در کلاسی که به بررسی انجیل متا پرداختیم، دیدیم که عیسی مسیح نگفت که آرامش بر زمین میاره. در واقع او خلافش رو گفت. در انجیل متی دیدیم که مسیح گفت: نکنید که من آمده تا صلح به زمین بیاورم. نی آمدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر عیسی گفت من آمدم تا در میان پسر و پدر دختر و مادر عروس و مادر شوهر اختلاف بیندازم دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود ایسا گفت که او بزرگترین کسی خواهد شد که جدایی میاره این واقعا درسته چرا که در 20 قرن تاریخ کلیسا اون رو میبینید در سراسر تاریخ کلیسا بیشترین خونی که ریخته شده، برای نام ایسای مسیح بوده. شما اغلب این رو بر روی کارت‌های کریسمس میبینید. بر زمین در بین مردمان سلامتی باد. اگه باب دو آیه انجیل لغا رو خونده باشید، آیه میگه و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند می باشند صلح و سلامتی باد. آرامشی که بر روی کارت‌های کریسمس به خاطر تولد مسیح وعده داده شده، آرامش دنیایی نیست. خدا آرامش در قلبها و زندگی مردمی رو وعده داده که مورد پسند عیسی هستند تنها پیروان مسیح هستند که سزاوار دریافت آرامش در قلب‌هاشون هستند در بالاخانه زمانی که شاگردان وحشت زده بودند چون رومی ها به دنبال اونها بودند و اونها این رو می‌دونستند عیسی برمیگرده و به اونها میگه ولی وقتی پدر تسلی دهنده یا روح القدس رو به جای من فرستاد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد در زمین هرچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. من هدیه این شما میگذارم و میروم. این هدیه آرامش فکر و دل هست. آرامشی که من به شما میدهم مانند آرامش دنیا بی دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید. نترسید. ما مطمئن نیستیم که رسولان چطور مردن. از کتاب شهدا، نوشته جان فاکس و دیگر نوشته های تاریخی میتونیم بفهمیم که چه اتفاقاتی برشون افتاد. ما تنها میتونیم از یک چیز در مورد مرگ رسولان مطمئن باشیم. همونطور که از نوشته های قدیمی میفهمیم اگرچه پتروس وارونه مسلوب شد اما مطمئننم وقتی که او رو برعکس مسلوب کردن او توی قلبش آرامش داشته. چون مسیح این آرامش رو به او وعده داده بود و براش مهم نبوده که چه اتفاقی میفته. من ایمان دارم که پتروس با آرامشی که توی قلبش داشته مرده. و این در مورد دیگر رسولان هم صدق میکنه چیزی که پولس در باب چهارم کتاب فیلیپیان از اون صحبت میکنه آرامش دنیا نیست مفهوم دیگری از آرامش در کتاب مقدس وجود داره که به با خدا در صلح بودن اشاره میکنه پولس وقتی انجیل رو موعظه کرده، به صلح با خدا اشاره میکرد پولس به ما میگه که هدف از مرگ مسیحیم بوده تا ما رو با خدا آشتی بده به قول پولس زمانی که مسیح روی صلیب میمرده تا دنیا رو با خدا آشتی بده خدا در او بوده و او با مرگش دنیا رو با خود آشتی داد و دیگر اونها رو مسئول گناهانشون نمیدونسته او پیام و خدمت آشتی دادن رو به ما سپرده پس ما باید بریم و به مردم بگیم با خدا صلح کنید چون عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا شما رو با خدا آشتی بده بنابراین شما با خدا آشتی داده شدی به عبارت دیگه آشتی با خدا رو بپذیرید. پولس در نامه خودش به رومیان باب 5:1 این طور گفته بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شده ایم از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده بهره هستیم اما وقتی که پولس در مورد آرامش در باب چهارم فیلیپیان مینویسه او به صلح با خدا فکر نمی‌کنه و منظورش آرامش دنیا هم نیست پولس خبر خوبی رو با ما در میون میذاره که حقیقت زیبایی به نام سلامتی خدا هست سلامتی خدا حالت مداومی از سلامتی هست که اگر به شرایطش عمل کنیم خدا ما رو در اون نگه میداره. در این باب کوتاه پولوس رسول مانندش اشعیا برای داشتن آرامش خدا دو شرط نمیذاره. من معتقدم که پولس در باب چهارم فیلیپیان به ما دوازده شرط میده که برای داشتن آرامش خدا باید اون رو حفظ کنیم. من میخوام این دوازده شرط رو که در باب چهارم فیلیپیان زیک شده در اینجا خلاصه کنم وقتی ببینید که این دوازده شرط چی هستن اگه اونها رو رعایت نکنید پس عجیب نیست که آرامش خدا رو نداشته باشید چون وعده آرامش دائم خدا بدون اجرای این شرایط به شما داده نشده اولین شرط اینه نگران چیزی نباشید شاید بگید خب پولس این برای تو راحته تو توی تیم خاص خدا هستی من اینجا توی دنیای واقعی هستم و کلی چیز دارم که نسبت بهشون نگران باشم. از شغلم مطمئن نیستم و کلی صورت حساب پرداخت نشده دارم. هایی دارم که به حرفم گوش نمیدن و ازدواج سختی داشتم. من کلی مشکلات دارم. آیا فکر می‌کنید پولوس به این دلیل گفته نگران چیزی نباشید چون او چیزی برای نگرانی نداشت وقتی که پولوس این نامه رو مینوشت توی زندان بود. اگه در بررسی کتاب اعمال رسولان با ما همراه بودید تجربه زندگی پولس رو دیدید و می‌دونید که پولس مردی نبوده که چیزی برای نگرانی نداشته باشه. من در مورد زندان مامرتین در روم، جایی که پولس روزهای آخر زندگیش را اونجا سپری کرد، مطالعه کردم و قبلا اون رو برای شما توصیف کردم. پولس آخرین روزهای زندگیش را رو بر روی این زمین در این زندان گذروند. نه به این خاطر که او قاتل یا سارق خطرناکی بود، بلکه به این دلیل که او انجیل عیسی مسیح را بشارت می‌داد. اون نامه دوم خودش به تیموتاوس رو در اون شرایط نوشت. ما به طور قطع نمیدونیم که پولس چقدر در اونجا موند. ولی این رو میدونیم که در انتهای زندانی شدن پولس در زندان رومیان او گردن زده شد. قبل از اینکه عمر پولس به پایان برسه، او میگه که او رو پنج بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدن. از شواهد پیداست که اگه یک زندانی چهل ضربه شلاق میخورد زنده نمیموند. پس حد شلاق 39 ضربه بود. پولوس این حد رو پنج بار تجربه کرده. پولوس میگه که سه بار این زدن زدنها توسط ترکی چوب بوده. این مجازات تقریبا مثل مجازاتیه که امروزه در سنگاپور دیده میشه. همچنین پولوس به ما گفته که سنگسار هم شده. کشتی او غرق شده بود. او در معرض خطر راهزنان هم بوده و در کل زندگی خطرناک و سختی رو پشت سرنهاده بود. با وجود تمام اینها او اولین شرط رو برای داشتن آرامش خدا اینطور ذکر میکنه. نگران چیزی نباشید پولس به ما میگه در مورد چیزی نگران نباشید چون او نگران هیچ چیز نبود پولس میگه نگران نباشید چون نگرانی سودی نداره در واقع نگرانی نابود کننده است او به ما میگه اگه در شرایط سختی هستید و میخواید که آرامش خدا رو داشته باشید اولین چیزی که نیاز دارید اینه که نگرانی رو از خود دور کنی چون نگرانی باعث میشه انرژی شما بیهوده هدر بره و نتونید با مشکلاتتون مقابله کنید. دلیلش نیست که پول از چیزی نداره که باعث نگرانیش بشه. دومین شرطی که اون میگه اینه برای همه چیز دعا کنید. در مورد چیزی نگران نباشید و برای همه چیز دعا کنید. وقتی شبان عزیزی میخواست تحصیل کنه، حتی پول به اندازه کافی نداشت که اسمش رو در مدرسه کتاب مقدس بنویسه. او به دفتر استخدام دانشکده میره جایی که به دانشجویان کمک میکنن تا کاری رو در اون منطقه پیدا کنه. مرد خدایی که اون دفتر رو اداره می کرد روی میزش یک نوشته بزرگ دیده شد. "اگه نگرانید چرا دعا می کنید؟ این یه سوال زیرکانه از افراد جوان و نگرانه. آیا شما برای این موضوع نگرانید یا براش دعا می کنید؟ این مرد با لبخند ای که نشان‌دهنده محبت خدا بود، به این جوونی که می‌خواست شبان بشه، میگه اگه دعا کنه خدا براش کاری مهیا میکنه. چندین سال بعد وقتی او از این دانشگاه فارغ تحصیل میشه به هیچ کس چیزی بدهکار نبوده اگر شما در جستجوی آرامش خدا هستید میتونید تصمیم بگیرید میخواید دعا کنید یا نگران باشید شما را به چالش میکشم در هر شرایطی که هستید مهم نیست که چقدر سخته شما حق انتخاب دارید میتونید دعا کنید یا اینکه نگران باشید کدومش را انتخاب میکنید پولس در حالی که زندانیه این کلمات رو مینویسه پولس خالصانه از فیلیپیان میخواد که برای او دعا کنند چون او با ایمان به اونها میگه زیرا میدانم که به وسیله دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح این امر به نجات من تمام خواهد شد پس دعاهای پولس و دعاهای فیلیپیان در واقع در زندان به یاری پولس میاد با این حال وقتی که پولس در مورد خاری در جسمش دعا میکنه خدا اجابت نمیکنه ولی او به پولس فیزی میده که در این وضعیت سخت به او خیلی کمک میکنه نتایج دعای شما هر چی که باشه چه اجابت بشه یا اینکه فقط فیض خدا رو برای عبور از این شرایط دریافت کنید باز هم دعا کنید چون پولس میگه که دعا سازنده است دعا کنید حالا هر جوابی که به شما برسه مهم نیست همیشه دعا کنید چون دعا دومین شرطیه که میتونید با اون آرامش خدا رو در زندگیتون تجربه کنید پس اولین شرط پولوس برای به دست آوردن آرامش اینه نگران چیزی نباشید و دومین شرطش اینه که همیشه و برای همه چیز دعا کنید سومین شرط او در مورد اندیشیدن او میگه در خاتم ای برادران درباره آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید از این نفر شنیدم که میگفت پنج درصد از مردم فکر میکنند و 10 درصد از اونها فکر می کنند که فکر می کنند چون اونها فقط پیشتاوری هاشون رو منظم می کنند اونها واقعا فکر نمی کنند چیزی که پولوس اینجا با ما در میون میذاره شرط مهمی برای آرامش شخصی هست. به اون پنج درصد پیوندید و فکر کنید مشخص کنید که چطور باید فکر کنید افکار شما مثل یک گوسفنده و شما باید افکار خودتون رو چوپانی کنید توسط افکارتون کنترل نشید افکارتون رو کنترل کنید شما تصمیم بگیرید که در مورد چی میخواید فکر کنید. رک و بگم من فکر میکنم وقتی که رومی نوشت، او تنها یک شرط برای به دست آوردن آرامش به ما نمیده. او به ما کلید سلامت عقلی شخصی خودش رو میده. اگه شما در شرایطی که گفتیم در زندان مامرتین روم زندانی بودید، این شرط آرامش باعث میشه که شما عقل سالمی داشته باشید. در اون شرایط وسوسه میشید به چیزی فکر کنید که حقیقت نداره. چون شما بی جهت متهم شدی همونطور که قبلا اشاره کردم پولوس با ارازل و اوباش زندانی شده بود اون افراد بدترین افراد روی زمین بودند ولی اتهام اونها در مورد پولوس صدق نمی کرد پس او به طور مداوم به حقیقت فکر می کرد اتهامات زیادی بودند که نادرست و ناشایسته بودند و البته خیلی هم غیر منصفانه بودند او میتونست برای خودش تاسف بخوره فکر کنه بودن در زندان برای او ناعادلانه است او میتونست به این چیزها و به ادالت فکر کنه بقیه زندانیان و سربازان رومی که افکار پاکی نداشتن یا چیزهای خوبی نمیگفتن او رو احاطه کرده بودند پولوس تلاش میکنه که در محیطی که سرشار از ناپاکیه درست و پاک فکر کنه محیط اطراف او پر از زشتی و محبتیه، ولی او تلاش میکنه تا به چیزهای محبت آمیز فکر کنه در چنین مکانی که از این قبیل چیزها احاطه شده او تلاش میکنه تا به چیزهایی فکر کنه که باعث جلال خدا بشه. چهارمین شرط او برای آرامش درونی خیلی کاربردیه. میخوام اونو اینطور بیان کنم. پولس گفت تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود. آیا پولس عملا به ما میگه چیزی هست که ما میتونیم با انجام اون به آرامش درونی برسیم بله دقیقاً داره همینو میگه در مزمور چهارم ما میخونیم که مزمور نویس نمیتونه بخوابه او استرس داره و نمیتونه بخوابه او در نیمه های شب صحبتی با وجدان خودش داره و تصمیمی میگیره او در قلب خودش مصمم میشه تا برای خداوند قربانیهای شایسته تقدیم کنه و به او توکل کنه وقتی که او این تصمیم رو میگیره وقتی که این رو اعلام میکنه آرامش عمیقی وارد قلبش میشه و بعد از اون میگه آسوده به بستر میروم و میخوابم زیرای خداوند تو یگانه کسی هستی که به من اطمینان میبخشی به عبارت دیگه او تصمیم میگیره تا قربانی شایسته به خدا تقدیم کنه پولس هم همون چیز رو به فیلیپیان میگه پولس به اونها میگه اگه میخواید آرامش داشته باشید تمام چیزهایی رو که از من آموختید و به دست آوردید یعنی اونچرا از من شنیدید سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود. بعضی وقت ما این آرامش رو نداریم چون قربانی های شایسته ای رو تقدیم نمی و کارهای مناسب انجام نمیدیم. و اصلا خودمون رو دوست نداریم. شرط بعدی پولوس برای به دست آوردن آرامش شکرگزاریه. شکرگزاری بسیار درمان کننده است. وقتی که برکات خدا رو یک به یک میشمارید و به زبون میارید از کاری که خدا براتون کرده تعجب خواهید کرد و به این واقعیت پی خواهید برد که آرامش شخصی محصول جانبی مثبتی هست که در نتیجه شوق گذاری و پرستش شما به دست میاد وقتی شوق شما از دیدگاه پرستش ابراز میشه به درمان کامل کننده شوق پی میبرید یکی از دلایلی که ثابت میکنه این نظریه درست هست اینه که وقتی شما پرستش فروتنانه خودتون رو ابراز میکنید به صورت خیلی عاقلانه افکار خودتون رو از انرژی منفی به سمت انرژی مثبت هدایت می کنید مثلا اگر شما تصادف بکنید و قسمتی از های فیزیکیتون را از دست بدید شما حق انتخاب دارید میتونید از اتفاقاتی که میافته افسرده و اندوهگین بشید یا اینکه میتونید شکرگزار خدا باشید و او را به خاطر چیزهایی که هنوز دارید بپرستید مثلا اینکه هنوز خودتون میتونید لباس بپوشید میتونید غذا بخورید و میتونید خیلی از کارها رو شخصا انجام بدید. کسی که از مشکل فیزیکی رنج میبره حق انتخاب داره. اینجاست که میتونید ارزش درمانی شوک‌گذاری رو نشون بدید. پولس به ما میگه که به تمام اینها با چشم شوک‌گذاری و پرستش نگاه کنید. به نامه فیلیپیان که از داخل زندان نوشته شده، رساله شادی هم گفته میشه. با اینکه پولس در زندان به سر میبرد، میدونست که حق انتخاب داره. میدونست دونست که میتونه نسبت به زندانی بودنش احساس ناراحتی داشته باشه یا اینکه میتونست از خدا به سبب این اتفاق متشکّر باشه او همچنین زنده بود میتونست دعا کنه و میتونست با مسیح ارتباط برقرار کنه هیچکس نمیتونست مسیح را از او جدا کنه این یعنی درد اجتناب ناپذیره ولی بدبختی یک انتخابه پولس این رو میدونست به این دلیل گفت شکرگزار باشید چون شکرگزاری شرطیه که با عمل کردن به اون میتونید با آرامش شخصی و آرامش روحی برسید. پولوس شرط دیگه ای رو برای داشتن آرامش واقعی پیش روی ما میذاره که اون مهربانی و ملایمت در رفتار هست. ملایمت چطور باعث آرامش میشه؟ سالها پیش از یک مرد بازاری موفق شنیدم که وقتی داشت با پسرش خداحافظی میکرد گفت: پسرجان یادت باشه اگه دیدی کاری بر وفق مرادت نیست بهش فشار بیار. ظاهرا این فلسفه زندگی پدر او بود. اما اگه این فلسفه زندگی پولس بود وقتی که پولس در زندان بود و بین دو زندانبان به زنجیر کشیده شده بود چه اتفاقی میافتاد پولس چطور میتونست این رو در وضعیت خودش به کار بگیره این به این معنی بود که او باید زنجیرهایی رو که به دستش بسته شده بود تکون میداد و سر صدا میکرد اگر این فلسفه زندگی پولس بود چه آرامشی به او میداد این ملایمت ملایمت پذیرش پذیرش باعث آرامش میشه وقتی که پولس میگه مهربانی و ملایمت در رفتار داشته باشید منظورش اینه که وضعیت خودتون رو به عنوان خاست خدا بپذیرید چون آرامش به بار میاره وقتی که پولس از کلمه ملایمت استفاده میکنه اشاره او به شخصی که خاست خدا رو قبول کرده و کل کنترل زندگیش رو به دستان خدا سپرده در ذهن پولس به ما میگه که صبور باشیم در بود عمودی بردباری یعنی با ایمان صبر کردن بعضی وقتا که با خدا راه میریم، باید منتظر خداوند باشیم. وقتی که این کار رو انجام دادیم، میفهمیم که خدا عجله ای نداره. اگرچه ممکنه ما خیلی عجول باشیم. پس کلمه‌ای که خدا اون رو به ما میگه اینه که صبور باشید. در رابطه ما با خدا، شکیبایی یعنی ایمان صبر کردن. در بود افقی و در ارتباط با مردم، شکیبایی یعنی با محبت صبر کردن. بعضی وقتا محبت باید بردبار باشه. و این یعنی شکیبایی این شکیبایی که پولس برای فیلیپیان و به لحاظ کار بردی برای من و شما نوشته سمره یه روح القدسه فقدان شکیبایی آرامش ما رو میگیره ولی به دنبال شکیبایی آرامش میاد شکیبایی یکی از های اساسی برای آرامش شخصیه بعد پولس به ما میگه که به بالا نگاه کنید در چهار شرط بعدی او برای آرامش پولس در مورد رابطه خودش با عیسی مسیح صحبت میکنه او میگه هیچ وقت نزدیک بودن خداوند یادتون نره. من شیفته یه چیزی شدم که پولوس از زندان مامرتین برای تیموتاوس نوشته که تقریبا آخرین کلماتیه که او نوشته. او میگه در اولین محاکمه من هیچ کس جانب مرا نگرفت. همه مرا ترک کردن. خدا این عمل را به حسابشان نگذارد. اما خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا کرد که توانستم تمام پیام را اعلام کنم. و آن را به گوش تمام ملل برسانم و به این وسیله از دهان شیر رهایی یافتم. پولس هیچ وقت تنها نبود پولس میگه میدونست که همه ترکش کردند. همونطور که تمام شاگردان خداوند رو ترک کردند. اما پولس میگه خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا کرد بعد پولس به ما میگه وقتی که در بدترین شرایط حتی در زندان تک و تنها هستید شما میتونید با یادآوری این که خداوند نزدیک هست آرامش رو دریافت کنید خدا همیشه به شما نزدیک است. وقتی کوری تنبام در اردوگاه مرگ هیتلر بود او میگفت سیاه چالی به این عمق وجود نداره اما محبت خدا کماکان از اون عمیقتره، کوری هم به ما میگه یادتون نره که خدا چقدر نزدیکه به همین ترتیب پولس میگه پیوسته در خداوند شاد باشید باز هم میگویم شاد باشید که ما میتونیم بگیم در خداوند شادی کنید همین و بارها و بارها میگم که شادی کنید چیزی که واقعا پولس میگه اینه که یاد بگیرید که شادی و خوشی دقیقا از شناخت مسیح میاد وقتی که تعالیم آیین ما میگه قایت نهایی انسانها جلال خدا و شادی در او هست یعنی چی؟ چطور میتونید در خدا شادی کنید؟ آیا میتونید در خدا شادی کنید؟ البته که میتونید اگه شما خدا رو بشناسید میتونید با حضور خدا شادی کنید میتونید برای همیشه در خدا شادی کنید وقتی که در حضور خدا زندگی میکنید و با او گام برمیدارید میتونید با رابطه با خداوند شادی خوشی و آرامشتون رو به دست بیارید آرامش شادی و خوشی شما بر چه چی چیزی استواره؟ اگر جواب این سوال سلامتی شما باشه پس آرامش روحانی شما شکننده هست چون امکان داره که شما سلامتیتون رو از دست بدید اگر آرامش روحانی شما بر اساس ازدواجتون باشه، اگه ازدواج شما شکست بخوره، امکان داره که آرامش روحانیتون رو از دست بدید. اگه آرامش شما به دوست داشتن کسی بستگی داشته باشه، آرامش روحانی شما شکننده است چون امکان داره که اون شخص رو از دست بدید. پس آرامش، شادی و خوشی شما باید بر چه چیز استوار باشه؟ پولس به ما میگه باید یاد بگیریم که شادی ما از مسیح و رابطه ما با او باشه. اگه آرامش شما بر روابطتون با مسیح استوار باشه هیچ وقت آرامشتون رو از دست نمیدید. شرط بعدی اینه در پی تایید خدا باشید این خیلی مهمه. شما تایید خداوند رو میخواید یا تایید انسان رو وقتی که بچه های من کوچک بودن و کسانی برای ملاقات من به خونه ما میومدند من فکر میکردم که بچه های ما مشکلی دارن. چون اونا خودشون رو, رو روی زمین مینداختند و مللق می و شلوغی میکردن من می میکردم که اونا برای چی این کار رو میکنن اما بعدها فهمیدم که چرا بچه ها این کار رو میکنن بچه های این کار رو میکردن چون اونها نیاز داشتند تا توجه مردم را جلب کنن بعضی از ماها هنوز که هنوزه همون کارهایی رو میکنیم که در می میکردیم ما با انواع مانورها به دنبال جلب توجه مردم هستیم مسیح این سوال رو پرسید شما که طالب احترام از یک دیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می توجه ندارید چگونه می توانید ایمان بیاورید پولس به ما میگه که این شرط دیگری برای به دست آوردن آرامش شخصیه در پی این باشید که توجه خدا رو جلب کنید نه توجه انسان ها چون اگر بخواید توجه مردم رو جلب کنید و این اساس آرامش شما باشه پس آرامش روحانی شما خیلی شکننده است این حقیقت داره چون امکان نداره که شما در آن واحد هم بتونید تعیید خدا رو داشته باشید و هم تعید انسان رو آخرین شرط پولست برای رسیدن به آرام شینه تکیه قلب و افکارتون بر مسیح باشه این یعنی اینکه بگیم خدایا من نمیتونم ولی تو میتونی پس من اینها رو به تو واگذار میکنم و قلب و ذهنم رو بر این واقعیت استوار میکنم که این من نیستم بلکه تو هستی که کاری انجام میدهی یعنی من نمیتونم کاری رو انجام بدم و تو میتونی این چیزیه که من نمیخوام اما تو میخوای چون در نهایت مهم نیست که من چیکار کردم بلکه چیزی که تو انجام دادی اهمیت داره خب اینجا دوازده شرط رو برای به دست آوردن آرامش شخصی دیدیم خب اینجا دوازده شرط رو برای به آوردن آرامش شخصی دیدیم آرامشی که کتاب مقدس به عنوان آرامش خدا از اون یاد کرده آیا شما آرامش مداوم خدا رو دارید اگه آرامش مداوم خدا رو ندارید، تعجبی نداره چون به این شرط عمل نکردید. من شما رو تشویق میکنم تا از خدا و مسیح و روح القدس بخواهید که به شما چنان فیضی اتا کنه تا بتونید این شرط ها رو به جا بیارید و آرامش روحانی ابدی به دست بیارید که شکننده نباشه. با اقتدار کلام خدا و مسیح و همینطور بر اساس تجربه شخصی خودم به شما میگم وقتی که ذهن شما بر خدا باشه و بر خدا مینان داشته باشید، خدا قادره شما رو در آرامش روحانی مداوم نگه داره. ما دعا میکنیم که شما آرامش داشته باشید. آرامش خدا رو، نه آرامشی که دنیا به شما میده. آرامش واقعی که شکننده نیست. لطفاً در برنامه بعدی هم با ما همراه باشید. دعا میکنم که شما آرامش خداوند رو در زندگیتون تجربه کنید. عزیزان اگه شما آرامش خدا رو در زندگیاتون از دست دادید، همونطور که معلم ما امروز متذکر شد، باید اون رو دوباره به دست بیارید. اگه ما به این دوازده شرطی که پولوز در کتاب فیلیپیان عنوان کرده عمل کنیم، میتونیم آرامش خداوند رو تجربه کنیم. به این شرطها عمل کنید و شرایط خودتون رو تغییر بدید. چون این شرطها باعث میشه که آرامش به زندگی شما بیاد. خب، وقت ما تموم شده، اما مطمئنم خدا هنوز با ما حرفایی داره و از شما میخوام که طوری برنامه رزی کنید که در برنامه بعدی هم با ما باشید. تا ضمن مطالعه کلام مقدس خدا باز هم از خداوند بشنویم تا برنامه مجدد دعا میکنم همچنان که در کلام اون پیش میریم، آرامش خدا بر شما و خانواده شما قرار بگیره.